سج اگر تو به خود میکنی به سجن مغر به پهندریا دیدی که مردم چالاک برآورند زعماق آب تیره درر به قصه نیز شنیدی که رفت در ظلمات کنار چشمه جاوی جوست اسکندر همین ترانه شنفتی که از بجاه کسان نمیدهند کسان را به تخت و در بستر نه سعد سلمانم من کناله بردارم که پستی آمد از این برکشیده با من بر چگاه رفعتم از رفعتی نصیب نبود کنون چه مویم کفتادم به پستندر مرا حکایت پیرار و پار به پنداریز یاد رفته که با ما نخوشک بود نتر نجخ شباهت من با بار باربری که یک بدان سال افتاده از دیگر که سالیان دراز است تیم حکایت فقر حکایتی که تکرار می شود به نه فرق. باش بگویم چیز تادانی و قیح درختی که میش بر در آن قات شورابه که از خجالت آب به تند باری بر خاک تن زند آذر تو هم به پرده مای پدر مگردان راه مکن نبای پریوان سر به زیر و زبر که توف که میترسی هر گشایی چشم تو را مساید رؤیای پرتلال و زر که توف که میترسی ار به خود جنبی ز عرش شعله در به فرش خاکستر به وحشتی که بیفتی افتیز تخت چوبی خیش به خاک ریدادت احجار کاغذی نفسر تو را که کسوت زرتار زر پرستی نیست کلاه خیلیش پرستی چه مینه بر سر تو را که پای براب است و کار خراب چه پی کندن در سیل بار این بندر تو که از معامله جز باد دست گیرت نیست حدیث باد فروشان چه می باور فکایتی عجب هستیم ندیده ای که چسان به تیغ کینه پکندن به کوی و گذر تراغ علم ندیدی به هر کجا کشتن زدند آتش هر جا به نامه بود دفتر زمین ز خون رفیقان من خذاب گرفت چون این به سردی در سرخی شفق منگر گر یکی به دفتر دفتر مشرق به دیده در که نبهش برسهی به سرودی سفت تازه بشتر بدون زمان که به گیران به خاک و خون غلطن به پای یاران من به زندان در توی زندانهای گیلان در همون سال سی و, سی و, سی و که من به زندان بودن زندانی های سیاسی رو توی اتاهای زندان به مسلسل بسته بودم بدان زمان که به گیران به خاک و خون غلطن به پای یاران من به زندان در مرا تو درس فرومای بودن آموزی که توب نامه نویسم به کام دشمن بر نجات تن رازنجیر روح خیش کنم زراستی راستی نشانم فریب رابرتر ز صبح تابان بر تابم ای دری روی به شام تیره رون در سپر سپارم سر وای دیو به مسکوک قلب بفروشم شراب سرانه دهم وانگهی خرم جل خر مرا به پند فرو مایه جان خود مگزای که تفته ناید آهن به این حبیر آزر. تو راه راحت جانگیرو من مقام مصاب تو جای امن و امن گیرو من ترید خطر nazram hamro aur kare kon phire دهانت را می بویند دهانت را می بویند که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را می بویند روزگار غریبی است نازنین و عشق لا کنار تیرک بند تازیانه می زنند عشق در پس خانه نهان باید. در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان میدارد به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبی است نازنین که بر در میکوبد و چباهنگام به کشتن چراغ آمده است نور را در پستوی خانه نهان باید کرد آنک بر گزرگاه ها مستقر با کنده و ساتوری خونالود روزگار غریبی نازنین و تبسم را بر لبها راهی میکند و ترانه را بر دهان شوق را در پستوی خانه باید کرد کباب قناری بر آتش سوسن و یاس روزگار غریبیست نازنین ابلیس پیروز مست سور ازای ما را بر سبره نشسته است خدا را در پستوی خانه <تصفيق> چه هنگام می کدام مجموعه پیوسته روزها و شبان را من اگر این آفتاب همان مشعل کال است بیشپنم و بیشپق که نخستین سهرگاه جهان را آزمیده است چهنگام میزیستم کدام باریدن و کاستن را من که آسمان خودم چتر سرم نیست آسمانی از فیروزه نشابور با رگه های سبز شاخ ساران همچون فریاد واژگون جنگلی در دریاچه آزاد و رها همچون آینه که تکسیرت می کند. به گذار آفتاب من پیرهنم باشد و آسمان منان کهن کرباس بیرنگ به گذار بر زمین خود بیستم بر خاکی از براده الماس و رقش در به گذار سرزمینم را زیر پای خود احساس کنم و صدای رویش خود را بشنوم رک روپ روپه های خون را در چیتگر و نهره برهای عاشق را در قیمان اگر نه چند میزیستم کدام مجموعه پی بسته روزها و شبان را؟ این خواهد اود در مشه مرم خشک آبدان بسممت تمام این قسمت اندازه به حکیت شیر و پرهاد هست. با این پرس که قرار بود پرها که یا کوه کن اجارنشنه شده برای استحمام شیرین گرماوه یا آبدانی از مرم تلخ چون قرابه زهری خورشید از خراش خونی گلو میگذرد سپیدار دلغک دیداغی دیداغیست بیمایه با شلوار شروار ابلغ و شولای سبزش که سپیدی خستخانه را مزمونی دریده کوت می‌کند. مرمر خشک آبدان بی آینه اریانی ای شیری نمیشود و تیشه کوهکن بی امان ترک اکتون پایان جهان را در نبزی بی یا میکوبد کود همچون دشنه زنگار بسته فرصت از بریده های خونبار از این در شماره هجرانی ها سنی واقعا اون سه سال سه سال که در خارج از کشور بودن واقعا این موضوع این رو با تمام گوشت و پوستم حس من یه چیزی رو براتون بگم که شاید باورشی خوده مشکل باشه ونید زن من اینجا در حضور شما هست و شاهد عادل این قضیه بود که من بند نافم به پستخون وصل بود من میدونستم قبل ساعت 11 پوستی پیداش نمیشه تو محله بود من از ساعت نمیشه جب نشستم اونجا و نمیتونستم چش بردارم از این صندوق پست واقعا اینجوری به همین تلخیه ازگردن و همین چون که اینجا بود کند همچون دشنه ای زنگار بسته فرصت از بریدگی های خونباره اصب میگذارد واقعا تجربه همون و بعد وان دوست داشت آخر بازی رو یکی از دوستان خواستم اما تین آخر بازی فقط یه نفر نیست عاشقان سرشکسته گذشتن شرم ترانه های بیهقام خیش و ها بی زمزمه و صدای پا سربازان شکسته گذشتند، خسته بر اسمان تشریح و لطه های بیرنگ غروری نگونسار و نیزه هایشان تو را چه سود پخ به پلک بر پروختن که هر غبار راه نفرین شده نفریند بیکنند غلطی تو را چه سود از باغ و درخت که با یاسها به داست سخن گفتهای آنجا که قدم برنهاده باشی گیاه از رستن تن میزند چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی فقان که سرگذشت ما سرود بیاعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعهٔ بیان باز میآمدند باش تا نفرین دوزخ است تو چه سازد که مادران سیاهپوش داغداران زیباترین ترین پرزندان آفتاب و باد هنوز از سر جاده سربر <تصفيق> از دختر و من شعر با اینبان عاشقانه هست در این مجموعه ترناهی ای کوچه که بربد یکی شو این نیست که اون آوردن کنم با کمم چشم یه شعر ولی محضه اصلا آشغانه نیست در واقع زده قرار آن که میگوید دوستت میدارم خنیاگر غمگیری است که آوازش را از دست داده است ای کاش عشق زبان سخم بود هزار کاکلی شاد در چشمان توز هزار قناری خاموش در گلوی من عشق ای کاش زبان سخم بود آن که میگوید دوستت میدارم دل اندهگین شبیز که مهتابش را میجوید ای کاش اش را زبان سخن بود هزار آفتاب خندان در خرام توست هزار ستازه گریان در تمناه من اش را ای کاش زبان سخن بود و اما اون دبقر اسم شروطه آشمان است جهان شاید از چشم دیگر بود کوتاهی است جهان در فاصله گناه و دوزخ خورشید همچون دشنا بر آید و روز شرم ساری جبران نافذی است آه پیش از اون که درش کرد شده چیزی دید درخت جهل معصیتبار نیاکان است و نسیم وسوسه ایست نابکار محتاب پاییزی کفری است که جهان را می آلاه. چیزی بگو هیش از آنکه که در عشق شدم چیزی بگو. هر دریچه یه بر چشمانداز اقوبتی می اشق عشق رتوبت چندشنگیز پلشتی است و آسمان سرپناهی تا به خاک بنشینی و به سرنوشت هیچ گرگه ساز کنید آه پیش از آن که در عشقرد شبان چیزی بگوی هر چه باشه چشمه از تابوت میجوشند و سودواران جوگیده آبروی جهانند اسمت به آین مفروش که پاجران نیاز قوم مسلمانشین خدا را پیش از آنکه در آتش برق شوم از عشق چیزی بگو احمد زیبرون در پسکوچه های نازی <تصفيق> نگاه کن چه پروتنانه بر می گسترد آن نحال نازو کلستانش از عشق خداست و پیش اسیانش بالای جهنم پسته است آن کوبه یکی آری می میرد به زخم سطحنجر با مرگشتر نمیرسد بگران که از طب وحن دفت کنه بل ای عزیز که ترسم دروازش کلام کوچک دوستی است انکار عشق را چون که به سرسختی سختی کرده این گشنه این به آستین اندر نهان کرده باشی. که عاشق اعتراف را چنان به فریاد آمد که موجودش همه بانگی شد نگاه کن چه پروتنانه بر درگاه نجابت به خاک میشکند شکند ای که توفانش مسخ نیارست کرد چه پروتنانه بر آستانه تو به خاک میافتد آنکه آن که در کمرگاه دریا در حلقه توانست کرد نگاه کن چه بزرگوارانه در پای تو سر نهاد آنکه مرگش میلاد پرحیاهای هزار شهزاده بود نگا بیلونه ناگزیر در تاق تاقی حوز خانه تا سالها بعد آبی را مکنی از وطن درد و ای تنها با تکرار چشمهای بادام تلخش در هزار آینه ششگوش کاشی لالای یه نجوابار فبوارهی خورد که بر وقته خواب ی اطلسی ها بگذشت. تا سالها بعد آبی را مفهومی از وطن دهد امیرزاده این تنها با تکرار چشمهای بادام تلخش در هزار آینه ششگوش کاشی روز برناک پنجه می گذشت از نیزه های سوزان نقره به کشترین ساید تا سالها بعد تکرار آبی را آشغانه مفهومی از وطن دهد تاق تاقی قیلوله و نجوای خوابالوده فبارهی مردد و سکوت هرکسی های تشنه و تکرار ناباور هزاران بادام تر در هزار آینه ششگوش کاشی سالها بعد سالها بعد به نیم لوزیگر ناگاه حاطره دور دست حوز خانی آخ همیش کاشی ها با عشقای آبی All right. <noise> به جستجوی تو بر درگاه کوه میگریم در آستانه دریا و علم به جستجوی تو در معبر بادها بیگرگم در چار راه در چارچوب شکسته پنجری که آسمان عبرالیده را آبی کوخ میگیرد انتظار تصویر تو این دفتر خالی تا چند تا چند بر جریان باد را پذیروپتند و خواهر مرگ است و جابدانگی رازش را با تو در میان نها پس به هیئت ینجی در آمدی با و آزنگیز گنجی از آن دست که تبلک خاک را را از این سن دلپذیر کرده است نامت سفید و دمیز که با پیشانی آسمان میگذرد متوزد با تو و ما همچنان دوره میکنیم کنیم شب را و روز را هنوز را. <تصفيق> <تصفيق> مرگ نازلی سپه سرچلید وارتان سالخانیان پس از کودتای بستاشت مرداز سی و گرفتار شد همراه مبارز دیگری کوچک شوشتری زیر شکنگه دتمنشانهی به قتل رسید و به سبب آنکه که با جای سالمی در بدن آنها باقی نگذاشته بودند. برای ایز گم کردن جنازه هردو را به رودخانه جارجرو دف کرد وارتان بار شکنجهی جهنمی را تحمل کرد و به چند سال زندان محکوم شد منتها بار دیگر یکی از افراد حزب توده در پروندهٔ خود او را شریک جرم خود علم داد کرد و دوباره برای بازجویی از زندان قصر احضارش کرد من او را پیش از بازجویی دوم در زندان موقت دیدم در صورتش داغهای شیاروار پوست کنده شده به وضوح نمایان بود در شکنجه های طولانی بازجویی مجدد بود که وارتان در پاسخ سالهای بازجور لگیجانه لب از لب نکرد و حتی زیر شکنجههایی چون کشیدن ناخنه انگشتها و ساعات متمادی تحمل دشوند قپالی و شکستن استخوانهای دست و پای خیش حتی نالهای نکرد شعر نفست مرگ نازلی نام گرفت تا از صد سانسور بگذارد اما این انوان شعر را به تمامی وارتان ها تحمیل داد و از صورت حماسه یک مبارزه به و خصوص دارد. پس مرگ نازلی نازلی بهار خنده زد و عرقبان چه کفت. در خانه زیر پنجره گلداد یا پیر دست از بمان بدار با مرگ نه از پنجر نیفکن بودن به هز نبود شدن خاص دربهار ناظری سخن نگفت سرفراز، دندان خرش بر جگر خسته بست رفت این یه توضیح راجعه پر به این که من خیلی جوان بودم این نشتن. عرض بعد نیست فسودن این شعر یک رباعی است یک چهار خطی است دندان خش بازگر خسته وسط رفت از دیرهی برآمد و در خوند نشست و رفت که در این زلال ترقی و جست رفت گل و بوزداد ز شکست رفت بعد اون چه که اون چه میون قبل از این حتی بودم از این های در واقع گسترش این وزن است به سلطه دیگه یه ای است که اون در مقابلش مقامت می نازلی بهار خنده زد و عرقبان چکوب در خانه زیر پنجره گرداد یاسفیر دست از گمان بدار با مرگ مرز پنجره میفکن بودن به هزن بود شدن خاصه در بهار نازلی سخن نگفت سر افراست دندان خشم بر زگر خسته بست رفت نازلی سخن بگو مرغ سکوت جوجه مرگی فجی را در آشیان به بیزه نشسته است نازلی سخن نگفت چو پرشید از سیرگی برآمد آمد و در خون نشست و رفت نازلی سخن نگفت نازلی ستاره بود یکدم در این ظلام در و جست و رفت ناز سخن نگفت ناز بنفشه بود گرداد و مجده داد زمستان شكستو چهارشنبه شد که این آوار <تصفح> خونین گورگومیش دیگرگون مردی آنک خاک را سبز میخواست و عشق را شایسته زیباترین زنان که اینش به نظر حدیگتی نچنان کنبه ها بود که خاک و سنگ را بشون البته من فکر نمی آقای نیتی رضایی که هنگیزه نرشتن چه هر شعر هستن خودشون چنین عقیدهی میداشتن ولی بنده چه این ندارم من میدید جزای خودم ها میزنم فکر میکنم بهشون منتقل بود که خاک و سنگ واقعا یک فریبه وطن پرستیمون افغال پرستیدن یه محدوده جوراقی در حال من فکر میکنم که یه هم میتونه یک عشق طبیعی داشته باشه میزنید عاشق خاک و سنگ باشه عاشقه چیز زنده و انسانی و یه چیز پویا تداقوم نسل انسان هست بیشتر شایسته اشق تا مثلا کودم در درابار خونین گرگومیش دیگرگون مردی آنه که خاک را سبز میخواست و اشق را شایسته زیباتری زنان که اینش به نظر هدیتی مچونان کنبه ها بود که خاک و سنگ را بشاید چه مردی که مردی که می گفت قلب را شایسته آن که به هفت عشق در خون نشیند و گلو را بایسته آن که زیباترین نامها را بگوید و کوه مردی از این گونه آشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل برنوشت روید تنی که راز مرگش اندوه عشق و قم تنهایی بود آه اسفندیار مدمون هم به که چشم فروت پوشیده باشی جای تذکری یعنی از کنم که آشیل و دهرمان رو چون خدایان به مادرش گفتن که این رو در چشمه ای فرو کن تا این تنبار بار پاشنه آشیل توی دست توی بردش توی آب آبورد اینجا نقطه زرفش بود و هم وقتی که توی چشمه این که توی این بود بکنه این رو میرفت سرشو میکرد زیر آب چشماشو بسته بود بنابرای چشمه او هم نقاط زرفش بود که رستم علاقه به هدایت سیمور تیر رو زد دقیقا تو چشم بود و آشیب رو هم که در میدان با تیر به پاشنش دادن کشته آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشته مرا بسازد این از قول اون مخاطبه آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا را بسازد من تنها فریاد زدم نه من از پرو رفتن تم زدم صدایی بودم من شکلی میان اشکال و معنایی یادم من بودم و شدم این برداشت فلسفی اخیره انسان ماهیتش پس از موجودیتش هست. اول یه آدمی به وجود میاد مثل همه آدم ها بعد میشه این بودن خب طبیعی اصبحت که چیزی هست موجود هست،, هست ولی اون چیزی که مهمه شدن هست یعنی ماهیت پیدا کردن که بعد از بودنه من بودم و شدم نزانگونه که ای گلی یا ریشهای که جوانهی یا یکی دانه که جنگلی راست گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان برونم آزبرد من بی بنده بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزروب تو و خاکساری نبود مرا را دیگرگون خدایی میبایست شایسته آفرینهی که نواله ناگزیر را گردن کتنه کند و خدایی دیگرگون آفرینه دلیقا سیراهن کوه مردا که تو بودیم و کوه پیش از آن که به خاکفتیم از توه و استوار مرده بودیم اما نه خدا و نه شیطان سرنوشت تو را بوتی رقم زد که دیگران میپرستیدند بوتی که دیگرانش میپرستیدند برای من فرق کنیم <تصفيق> <المزام> همه لرزش دستودرم از آن بود که اش... <تصفيق> <تصفيق> همه لرزش دستودرم از آن بود که عشق اش... پناهی گردد پروازی نه گریزگاهی گردد آیش شهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی نشور شعله بر سرمایه درود آیش آیش چهره سرخت پیدا نیست بباره تیره تسکینی بر حضور وحن و دنجره در بر غریز حضور سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برشه بر حرب آنید آی اشک آی اشک لنگ آشناید ایدارم. خرشید های همیشه زیبایی طلنگری است خرشیدی که از سپیده دن همه ستارگان بی نیازم نگاه کند نگاهت است نگاهی که اوریانی روح مرا از مه جامعی کرد به که کنونم شب بیروزن هرگز چنان نمایت که کنایتی بود بوده چشمانت با من گفتند که پردایی زیگر آنک چشمانی که خمیر مایه مهر است بینک مهر تو نبد افزاری تا با تقدیر خیش پنجه در پنجه کنم آفتاب را آفتاب را در پراسوهای افق پنداشته بودم به جز عظیمتنا به گزیری نبود چون این انگاشته بودم آیداب پس خزیمت رو بود میان <تصفيق> <تصفيق> آفتاب های همیشه زیبایی طولنگریست نگاهت شکست ستمگریست و چشمانت با من گفتند که فردا روز بیگه این که از رب من خواسته که من این وسیعه برای انسان ما بحمند بخونم واقعا نه پقدر نه بقیقا به خاطر اینکه این, این شهر خونده شده باشه به خاطر حمله ای که اون روز اون آقا راجبه خود روز به به من کرد به اینجا اسم ایرانی سر جاش محکم هست پس دقیقاً علت پس گرفته شدن اون شعر از آقای خسرو روز به فقط همون خاطر است که اون روز ارز کرد زیاد عبتی این شعر خیلی است سال 1329 شد نمیشته شد بحمن 29 قصیده برای انسان ماه بعد تو نمیدانی غریب یک عظمت وقتی که در شکنجه یک شکست نمینالد چه کوی است تو نمیدانی نگاه بی‌وجوه محکوم یک اطمینان وقتی که در چشم حاکم یک تراس خیره شود چه دریایی است تو نمیدانی مردن وقتی که انسان مرگ را شکست داده است چه زندگی است تو نمیدانی زندگی چیست پاد چیست تو نمیدانی ارانیکیست و نمیدانی هنگامی که گور او را از پوست خاک و استخانها جرم باشتی و لبانت به لبخند آرام شکفت و گلویت به انفجار خندهی ترکی و هنگامی که پنداشتی گوشت زندگی او را از استخانهای پیکرش جدا کرده ای چگونه او تبل سرخ زندگیش را به نوا در در نبز زیرا در قلب آبادان <تصال> و هماسه طوفانی شعرش را آغاز کرد با سه دهان صد دهان هزار دهان با سی هزار دهان با قافیه خون با کلمه انسان با کلمه انسان کلمه حرکت کلمه شتاب با مارش فردا که راه می روید می افتد بر می فیزد بر می فیزد و به سرعت انفجار خون در نفض گام برمیدارد و راه میرود بر تاریخ بر چین بر ایر، ایران و یونان انسان انسان انسان انسان انسان ها و که میدود چون خون شتابان در رگ تاریخ در رگ ویتنام در رگ آبادان انسان انسان انسان انسان انسان ها و به مانند سیلاوک از سرریز می در بر مسراء عظیم تاریخش از دیوار هزاران قافیه قافیه دوستانه قافیه در ظلوت قافیه پنهانی قافیه جنایت قافیه زندان در برابر انسان و قافیه ای که گذاشت آدور فرزا به دنبال هر مسرع که پایان گرفت به نون قافیه لذج قافیه خون و صلا پرتبل از دیوار هزاران قاپی خونین گذشت. خون انسان خون انسان انسان خون انسان و از هر انسان سلابه از خون و از هر قطره هر سلا هزار انسان انسان دیور انسان, انسان ماه بهمن انسان پلیپسر انسان جکت و انسان چین انسان انسان گ، انسان هر قلب که در آن قلب هر خون که در خون هر قطره. انسان هر قطره که از آن قطره هر تپش که از آن تپش هر زندگی یک انسانیت مطلق است و شعر زندگی هر انسان که در قاپیه سرخ یک خون به فضیلت پایان مسیح چهار میخواه و یک تاریخ است و انسانهایی که پاد از زنجیر و آهنگ تبل خونشان میسراین تاریخشان را حباری دون جهانگیر یک دیدند و استفراغ هر خون از دهان هر اعدام رضای خودرویی را میخشکاند در خرزهره دروازه یک بهشت و قطر قطره هر خون این انسانی که در برابر من ایستاده است سیلی است که پلی را از پس شتابندگان تاریخ می میکنند و سوراخ هر گلوبه بر هر پیکر ای است که سه نفر، صد نفر، هزار نفر که سی هزار نفر از آن بیوزرند روبه برژز و مجرد پرداخت و معبر هر گلوله بر هر شکست دهان است که آج گرامبه پادشاهی را در انولیدی می جود و لقمه دهان جنازه هر بیچیز پادشاه رزاخان شرف یک پادشاه بیهنه چیز است و آنکس کس که برای یک غبا برتن و سه غبا در دو و آن کس که برای یک لقمه در دهان و سنان در کف و اون کس که برای یک خانه در شهر سه خانه درده با قباب و نان و خانه یک تاریخ جنان کند که تو کردی خان نامش نیست انسان نه نامش انسان نیست انسان نیست من نمیدانم چیست به یک سلطان اما بهار سرسبزی با خون ایرانی و اصدخان منگی در دهان سگ انوالید و شعر زندگی او با قافیه یک خونش و زندگی شعر من با خون قافیهش و چه بسیار که دفتر شعر زندگیشان را با کفن سرخ یک خون شیرازه بستن چه بسیار که کشتن بردگی زندگیشان را تا آقای تاریخشان زاده شدن با ساز یک مرد با دینتار یک لرکا شعر زندگیشان را سرودند و چون من شاعر بودن و شعر از زندگیشان جدا نبود و تاریخی سرودند در هماسه سرخ شعرشان که در آن پادشاهان خلق با شیهه حماقت یک عصب به سلطنت نرسیدند و آنها که انسانها را با بند ترازوی عدالتشان به دارابیختند عادل نام نگرفتند جدا نبود شعرشان از زندگیشان نسی زندگی من همون عبایل زندگی پالی من <تصفيق> جدا نبود شعرشان از زندگیشان و قافیه دیگر نداشت جز انسان و این دام که زندگی آنان را باز گرفتند حماسه شعرشان توفانی تر آغاز شد در قافیه خون شعری با سه دهان، صد دهان، هزار دهان، تا ست هزار دهان شعری با قافیه خون، با کلمه انسان، با مارش فردا شعری که راه می روید می افتد بر می و به سرعت انفجار یک نبز در یک لحظه زیست راه می بر تاریخ بر اندونزی بر ایران و می چون چون در غرب تاریخ در قلب آبادان انسان انسان انسان انسان ها و دور از کاروان آقای فرزانه آقای فرهاد آریش که این شب 46 در سمبوزه بودن ایشون به اتفاق برنامه رشادون برنامه رو کنسل کردن و آقای پژوا محمودی و دوستان دیگر که واقعا کمک کردن تا این بر